علی مراد الو سلام آقای سخابتی سلام آقای مراد حال شما ممنون آقای سخابتی موضوعتون چیه؟ خبر نداری؟ چرا خوندم؟ گفتم شاید تصمیمتون عوض شده نه همون ما تصمیمونو گرفتیم گیگه موضوع تصمیم, تصمیم گیریه الو الو فکر کنم که این خود انتخاب موضوع همجود به تصمیم های سخته برای من که سخت نیست چیش سخته برای شما شاید فکر کنم برای شما سخت باشه نه من خیلی راحت این تصمیم گرفتم خب من حالا سوالم اینه به نظر شما چه تصمیم های سختن خب این که سوال منه خب حالا شاید گفتم جواب داشته باشیم براش خب من من که اصلا دنبال جواب دادن نیستم میدونی؟ من اومالی آه... سوال کردنم خب من, من تصمیم تصمی گرستم سوال کنم آره از من سوال کنید خب تص... چه تصمیمی سخته برای تو؟ اه... تصمیمی که چند تا جواب داشته باشی ولی به هر حال فکر کنی که همه هم میتونن به یه اندازه جواب خوبی باشن امه. یا ندونی که کدوم جواب خوبی هن. به هر حال چند تصمیمی باشه یه, به... یه همچین تصمیمی اخیران گرفتی میتونی بگی؟ همچین تصمیمی آره گرفتم. رو میخواستم عوض کنم. خب، اینجوری گرفتم. البته خب نگاه کنید، سریعاً مثلاً بعد یه هفته به رسیدم که نه، اینکه یکی از گزینه ها از بقیه چیز از بقیه انگار بهتره. اون رو اجرا کردم. هم سخت نبوده. خب سختش این بود که تو پروسه‌ای که به این نتیجه برستم که کدوم یه ذره بهتره. خب این هر چی بیشتر طول بکشه انگار سخت‌تره. مثلا مشورت می‌کنی بعد اه, یه تصمیم ساده همه اول یکی از تصمیما میگه او من مثلا اصلا ساده ترم بهترم من انتخاب کن ولی یه تصمیم سخت باید مشورت بکنی باید بیشتر فکر کنی باید بررسی میدانی بکنی حتی شاید کتاب بخونی براش حتی شاید بری یکی از تصمیمات یه ذره انجام بدی ببینی مثلا چه بازخوردی داره اینجوری تا بالاخره به این برسی که کدوم بهتره بعد میگم سختی تصمیم فکر کنم به اینه که اون پروسه خیلی زمان بر باشه یا اون پروسه که به این نتیجه می که کدوم یکی از اینا بهتر از بقیه حال گرفتن به هیچ پروسه تو رو به این نتیجه نرسونه چیکار میکنی؟ میرم توی قدرون بعد نگاه میکنن به قبلا میگم که خب نگاه کنونی هم کلی از این تصیما گرفتن <تصفح> و هیچ اتفاق خاصی افتاده تهش همشون مردن تا هم یکی رو انتخاب کن بالاخره تا مخرش می میریید یعنی خیلی سخت نمیگیری؟ آره خیلی سخت نمیگم چون واقعا نگاه کن یه جایی دیگه سخت گرفتن نداره. ولی خب بازم سعی سعی میکنم اونی که به بقیه آزار کمتری میرسونه یا اونی که ریسکش کمتره با این همچین ملاکای عمومی بالاخره یکی شو انتخاب کنم. حالا الان به نظرت این برادر این دوستمون چیکار باید بکنه؟ برادر دوستمون به نظر من اولین چیزش اینه که خیلی گزینهاشو بسته، خیلی مثلا به دانشگاه ارزش بالایی قائل شده. البته برادرش این کارو کرده ما خودش خبر نداریم آره, آره همون برادره خیلی انگار گزینه‌هاشو محدود کرده م... میتونه یه ذره دیدشو بازتر بکنه یعنی به نظر من مسئله الان این نیست که بین این چهار گزینه یکی انتخاب کنه الان مثلا که اصلا روی گزینه هاش بازنگری کنه روی صورت مسئلهش باز بازنگری کنه الان مسئلهش اصلا خیلی شفاف نیست الان مثلا, مثلا مثلا که اینه که این این برادرش از زندگی برادرش بکشه بیرون شکلاتش دیگه نکنه راست میگی هر برای خودش کار کنه مثلا مشورت از هم بگیره ما اصلا نمیدونیم برادر پرسیده از این نظر خواسته بعد یا خودش ساده گفته شکلات بخشه... برای چیه آره دیگه آدم مثلا 18 19 ساله هم هست که دیگه میگن عاقل و بالغ دیگه میتونه خودش تصمیم بگیره بالغ شاید باشه ولی عاقل که بعید آدم تو قبل از بشه آره موافقم نه این آنقلی که میگن یعنی اینکه که مثلا مشکلات روانیهات نداری اه هم اه هم. اه هم. آره آره مشکل روانیهات بعیدی داشته باشه آره که حتما هست آره ولی صورت مسئله درست میگی شفاف نیست شفاف نیست الان صورت مساله رو من اینجوری برداشت میکنم که بین این چهار تا بوزنه رو کدوم رو انتخاب کنیم خب این اه. که صورت مسئله نیست من میتونم پنجا تا گذینه دیگه هم اضافه بکنم آره من میتونم پنجا تا من میذارم دوش آره سیته هم که شما کتاب بوشتی برای این اصلا توش چیز نیستش مهاجرت به استان و همکاری با علی مراد آقا آفرین دقیقا مهاجرت به چین و رفتن به یه معبد و اونجا اتکاف کردن هم توش نیست آره سرکت کنم دو سه هزار تا گذینه میشه اضافه کرد. آره عزم. اگه بشینیم مرحب. ولی آخرش برادر خواسته که چیز کنه دقت که من های قبلی رو گوش می‌کردم خیلی منمن میکنم نمی‌دونم چرا طبیعیه دیگه بالاخره آره منم مثلا های قبلی گوش کردم متوجه شدم خیلی با صدای زیر حرف می‌زنن با این پادکست منم خیلی بمه واقعا آره چرا تو تلفن اینجوری میشه نه نه واقعا زیره الان خودم صدای خودم اشتم دارم با صدای بالا حرف می‌زنم نمی‌دونم چرا اینا طبیعیه نه. آره ولی گفته که چی کار بکنیم بیشترین بازدهی رو داشته باشه آدم مگه میخوان کارخونه بزنه دقیقا همین الان من میگم تو سه تا چیز اصلا باید بررسی کنه یکی توی اصلا کل پیشپردش رو باید بررسی بکنه اصلا پیشپردش در مورد زندگی به نظر ما اشکال داره مثلا زندگی اینجوری می‌بینه زندگی رو چطور؟ چی فرضش زندگی و تموینه زندگی برادرش. زندگی برادرش دقیقاً. ام. که یه پولی این باید در بیاره. مثلا میگه که تو رستوران بره اینجوری بازده داره، بره توی اون کار میره توی آی‌تی اونجوری بازده داره. یعنی یه جوری این برادر قراره یه پولی در بیاره. خلاشد نه، شاید برادره به این نصیب بسته که والله توی زندگی میخوام بازده زندگی من مثلا اینه که نفس عمیق بکشم. با توجه به اینکه در پادکست قبلیمون مطلع شدیم ورزه پدرش خوبه بنابرین برادر اگه برادر کوچیک باشه شاید خیلی نیاز نشه باشه پول در بیاره. آره دقیقا شاید بتونه با حتی با یه کاری چون حالا آدم سرمایه که داشته باشه مطمئنا درآمدش خیلی بیشتره تا وقتی که سرمایه‌ای نداره. این من مثلا احساس میکنم یکی از مشکلاتی که اصلا خودین توی خانواده که همه هنرمندن، یه بچه روش ف... این فشار هست که تمام باید یه هنری کسب کنه. یا یعنی یه خانواده که همه دکترها دارن این بچه‌ای اصالتجگی بچگی... منو یه بچه استراق بره الان 10 در سالگی اومده میگه مامان من پست دکترا برم کجا پستاک برم کجا بخونم <تصفيق> خب چون که مامانش مامانش دکتر پزشک و یه دکترا خیلی گنده داره آمریکا رفته درس پونده پدرش دکترا داره بعد همین جور مثلا توی محیط کار مامانش یه دکتر فهم مینه بعد این ذهنشو درگیر کرده حالا یه بچه هم که مثلا توی خ... یه پدر پولدار داره احتمالا این این براشون دهغن است که خب چیجوری جوری پولدار بشه حالا اینا اینا اینا حکسیات این این آره ولی خب به هر تو الان تصمیم سختی فیشه رو داری بخوای بگیری من کمکت کنم. تصمیم سخت. آره یه کاره ترجمه من قراره یه سری زیر زیرنویس کنم نمیدونم خودم انجام بدم. بدم به یکی دیگه انجام بده. بدم یکی دیگه انجام بده خودم ویراستاری کنم. الان واقعا خیلی مرددَم. خ... بده ببین یه نفر دیگه انجام بده. خب دادم یه نفر انجام داد صفحه ای 6000 تومان میگیره و با افتضاح ترین کیفیت مثلا تحصیلیات این کارم داره ولی من خیلی خودم بهترین انگلیسی ترجمه میکنم یعنی من برایش اصلا تحصیلیات خاصی نداره کار کمتری انجام میدی دیگه اه... نه... متوجه نمیشم یعنی چی کار کمتری خب یعنی کارو اون انجام میده دیگه اون ترجمه میکنه خب اون ترجمه میکنه ولی کیفیت تو خوب نیست چون صاحب چیز خودم هم. صاحب پروژه این کیفیت ترجمه هر چی بالاتر باشه نهایتاً سود اقتصادیش برمیگرده به خودم و مسئولیت کیفیت ترجمه با منه برای خب پس اینکه واضحه خودت بعد از دیگه اینکه دیگه تصمیمی سختی نیست خب آخه خودم هم خیلی وقت ازم میگیره چون من مترجم حرفه‌ای نیستم دستم تون نیست کیفیت کارم بالاست ولی خب خیلی طول میکشه میگم شاید اگه من اون تایم و مثلا برم ویولون تمرین بکنم برام بازدهیش بیشتر باشه خب می‌تونی که کل کارو بیخیال چی پروژه رو پس نه چرا چون که این یه چیزی داره به همون دلیلی که علی سه میگه لطفا تماس بگیر من نه نمیگم می تونی همین که آدم نباید نه ننگ بهش نباید ننگ بهش آره ولو اینکه مثلا بگم که من نقشه‌مون توی این پروژه در حد مشاور میارم پایین چون این پروژه اصلا چهجوری به وجود اومد ما نشستیم دو نفر توانایی و دانشته‌ها و امکانایی که داریم مثلا توی زندگی رو ریختیم رو هم از توش در اومد من <تصفيق> گفتم من توی این اوضاع تخصص دارم اون گفت من توی این حضه بازار دارم من توی این مثلا اطلاعات دارم گفتیم خب از تو دل این مثلا چی در میادیم که ما فلان فیلم ها رو بگیریم، زیرنویس کنیم شما بفروشی خب بعد حالا اینجوری شده یعنی تصمیم کلا بیان بیرون و نه اصلا باش موافق نیستم و بعدش چیکار کنم آخه بیکار میشه مینمد به سختی هست به نظرتون این یا من فکرم سخته ببینده تصمیم سختی به نظر نیست یعنی از دید منطقی تصمیم سختی نیست ولی مهم اینه که هر کسی که در اون لحظه خودش فکر میکنه تصمیم سختی داره پیش رو داره به نظر من تصمیم سخت اینه که توی اتوبان داری با سرعت 120 میری و یه دفعه جلود یه سگی، گاوی، سنگی ماشینی چرپ کرده چیزی ظاهر میشه توی اون لاینی که هستی و یه ثانیه فورجادت کسری از ثانیه فرصت داری که تو آینه نگاه بکنی ببینی میتونی بکشی کنار یا اینکه باید بزنی رو ترمز با تمام قوا یا اینکه اشعه زده بخونی در اون کسری از ثانیه تو تصمیم سختی پیشه رو داری و هیچ راه برگشتی هم نداره آه. یا اینکه یه این کسی از نزدیکانت کسی که دوستش داری در همین صحنه ای تصمیم درستی نتونسته بگیره و الان در کماست دفر کرده و رفته وضعش خرابه خوب تو بیمارستان حالا دکتر ازت میفرسه که ما اگر اینو عملش بکنیم 8 درصد شانس زنده موندن داره ولی امکان داره همیشه فلج بشه اگه عملش نکنیم 15 درصد احتمال داره خوب بشه ولی 85 درصد میمیره کلا برای شما تصمیم بگیرین که اجازه عمل بدین یا ندین اینم تصمیم سختیه ییم یعنی اینکه این من آخرا. برم هتلداری بخونم تصیم آخر و یعنی می چون که اطلاعات نداریم چون که هیچ خبر نداریم چی میشه توی اینا نه میخوام بگیم که اصلا شما سر دوراحی نیستی و آها. اونجا شما سر دوراهی هستی و از دست میدی یه گزینه رو کلاً اگر اون یکی گزینه رو انتخاب بکنی آره امکان داری جون تو و جونی کسی که دوستش داری از دست بدی ولی اینکه من برم هتل داری بخونم یا برم رستوران بزنم اولا شما هیچ چیزی از دست نمیدی سر دوراهی یه آره. چیزی رو انتخاب نکردی قسمتی از سفر زندگیته حالا داری میری قبل از اینکه مثلا از کاشون رد بشی از اسفهان رد میشی از گم رد میشی از کاشان رد شدن رو میذاری به مقصد بعدی یا منزلگاه بعدی از هتل داری خوشت نایمت ول میکنی میری ماشین سوار رانندگی میکنی از اون خوشت نایمت میری برنامه نویسی میکنی از اون خوشت نیومد. و بعدم اینا چیزایی که اصلا اطلاعاتش موجود نیست برای شما یعنی هیچ منبع خارجی وجود نداره که دلیل بیاره شما با زندگیت چه کار بکنی چه چیزی بهتره؟ ای این نوع از پسیمگیری بیشتر, بیشتر از این که شما سوال دیم باشه که آیا درست هست یا نیست و دنبال جاستیفیکیشن دنبال چی میشه؟ دنبال توجیه بگردی توجیه منطقی اقتصادی بهره‌وری، زمانی نمیدونم اینا براش بگردی بیشتر از اینکه این, این سوالو بپرسی که جوابش اصلا در دنیای خارج برای زندگی شما وجود نداره خیلی راحت میتونی بپرسی این عرضش امتحان کردن داری یا نه آها آره الان این سوالی که شما گفتی خیلی شفافتر شد اینجوری نگاه کردن مسئله خیلی بهتر شد کدوم،, کدوم بهتره کدوم بازده بیشتری چون زمانی میتونی چهار تا گزینه رو با همدیگه معایست کنی که بتونی یه عدد بهش نسبت بدی یه وزن بهش نسبت بدی بگی این نه اون نوه اون چهار اون شیشه بلد. و بعد من نه انتخاب میکنم ولی در مورد تصمیمی که میخوای برای زندگی بگیری حتی میگم کلمه تصمیم اینجا شاید کلمه مناسبی نیست برای سفر زندگی برای اون جایی که میخوایی تو زندگی ازش راحت بشی اصلا نمیتونه کشکی نمیتونه عدا هیچ معیاری وجود نداره یه نفر پیدا بشه و یه عدد بذاره روی اون کار و بعدم شما وقتی میری توی اون کار مثلا برادر این آقا بره هتل داری حالا بره توی هتل کار بکنه بره یه هتل داری بخونه بره یه هتل ترسیس بکنه هر به در مورد هوتل داری کتاب بنویسه به در مورد داری و توریست یه فیلم تهیه بکنه هر،, هر کاری که میخواد با این کانسپت رو هوتل داری بکنه این هنوز به وجود نیومده این کانسپت برای اینو و اگه آلام سن اسم برادر محمد حسن باشه حسن زمانی که میره در هوتل داری یه بخشی از وجودش رو یا همه وجودش رو میبره و اون کانسپت رو شکل میده مثل اصفرمی که یه تخمک رو بارور میکنه و یه جنین به وجود میاد هنوز خوتل داری برای حسن یه ایده است فقط یه امکان نیست این ایده رو ایشون میره با شخصیتش با ایده هاش با خلاقیتش با ترسش، با آرزوش با هر چیزی که داره با توانمندیش با کاری که میکنه این رو شکل میده این رو بارور میکنه و بعد اون وقت میتونه بعد از 10 سال یا 5 سال دلیل بیاره که این انتخاب من خیلی خوب بود یا این انتخاب منا خوب نبود یا من این انتخابی که به ظاهر خیلی ها فکر کردن بعد رو به این شکل خیلی خوب کردن. کردم. آره. خیلی یا خیلی کارا کردن که همه بهشون گفتن نه این کارو نکنین این انتخاب تو اشتباهه حالا چه در مورد همسر چه در مورد شغل چه در مورد محل زندگی چه در مورد سرمایه گذاری هر چیزی. همه دوروری روش گفتن این انتخاب اشتباه. اون طرف رفته اون چیز رو ساخته با تمام وجود و بعد از پنگ سال درست ها که اون چیز ساخته شده حالا یا رابطه است یا خانواده است یا شغل یا یه بیزنسه اون وقت اون آدم دلیل آورده برای دیگران یا حالا شایدم نه آورده ولی دلیل ساخته شده من نشون داده شده که این درست بود نشون داده شده که حالا درست و غلط هم نداره من این انتخاب کردم پاش وایستادم انتخاب منه بخشی از زندگی منه بخشی از مسیر منو درست کرد حالا خودم را ازش و خودم هم مسئولیتش رو به عه میگیرم مسئولیتش آفرین میگیرم این رابطه رو باها دارم حالا امکانم داره عوضش بکنم امکان داره یه بخشی از زندگی من این بود تا ابدم رزومی نداره باشه این چیزا رو ازش یاد گرفتم این چیز رو بهش دادم خداف ممسله بعدی سفر بعدی جاده بعدی. ولی هیچ کسی هیچ منبعی وجود نداره در دنیای خارج که بیاد یه ارزشی بذاره آره... به جا... من میگم اصلا نگاه کنین این نگارش رو به بسلی صحیح و غلط یه ذره اشکال داره مثلا میگیم که انگار تست کنکوره آف صحیح. تست کنکوره که یکی از جواب رو سریم یا ما هیچ منبعی نداریم که یه دانایی کل بشه بگیم خب حقیقت چیه الان مثلا جواب این سوال دقیقا چیه صد درصد صد علم که باشه که مثلا با یه احتمالات خیلی بالایی با احتمال بالا میاد توجیه میکنه دانشو اگر فلسفه باشه که غالبا چندتا تا جوابن که هر کدوم مثلا دلایل خاص خودشونو دارن بعد این واقعیت اینجوریه که حقیقت جوی ما تو مثلا دنیای واقعی اینجوریه ولی این مردم فکر میکنن که نه یه جواب درست وجود داره یه تیک میزنی بغلش یه رفرنس هم از باش چک بکنیم من فکرم این خطر برای این امکانهایی هم که در کتاب امکان نوشته شده وجود داره که تبدیل به یه تست کنکور بشه نظرت آره. چیه ممکنه فکر کنن که اولا باید حتماً این که از این سیتا رو انجام بدیم یا مثلا این سیتا همشون خوبن، ام. مناسبن، مناسب هم خوب نه برای من ام. یا مثلا آره دیگه ما دیگه نبرا بریم دانشگاه دیگه دانشگاه بعده دانشگاه تالا تا حالا اایه این بود که ما باید بریم دانشگاه اون دانوی کل الان دیگه گفته نریم ما نوبعد بریم دانشگاه ام. نه اصلا اینجوری نیست حالا تو الان متوجه شدی که باید این پروژه خودت انجام بدی یا دیگه نفر دیگه ترجمه کنه الان به نظر خیلی دیگه فرق نداره چون هر هرکدوم برم یه جاده است دیگه نکنه من اگه خودم انجام بدم خب مهارت‌های ترجمه ای بهتر میشه یه سری تجربیت کسب می‌کنم پروژه به یه مسیر میره ام. اگه بدم به یکی دیگه یه مسیر دیگه میره و اگه میکنیم یکم تمه تو کم کنی بدی یه نفر که ترجمهش خوبه اون انجام بده ترجمه خوب اونجوری پیدا نکنیم نه مسئله تمه نیست مسئله اینه که داریم سرمایه گذاری میکنیم روش بلاخره پول بیشتری باید بدی به اونی که ترجمهش خوبه دیگه آره ولی خب الان من با این کسیم که بدون نفری که تست دادم گفتم نگاه کنم من الان به تو پول نمیدم صفحه اینقدر ولی وقتیش فروش رفت میام پول پول نداریم. و اگه تا بعد محدود. از ولی ولی اگه تا بعد از عید ما سود نکردیم از جیب خودم میان بتونیم منابعتونم محدوده نه که محدود باشه و میتونیم منابه بذاریم براش ولی میخواییم تا میشه این کارو نکنیم و مثلا اون افراد ما از سود شریک میکنیم مثلا میگیم که ترجمه صفحه شیش هزار تومنه ولی مثلا من به تو صفحه چار هزار تومن بیدم به علاوه یه دو درصد از سود حاصل اینجوری باشون مثلا کار میکنیم. بسیار خوب خیلی ممنون که تماس گرفتید. خواهش می‌کنم آقای سخاوتمند. قربونت بشم. قربان شما. فعلا خدا. خدا. خدا. الو؟ الو؟ بفرمایید. سلام. سلام. حالت خوبه آقای سخاوتمندی؟ خیلی ممنون شما خوبین؟ مرسی ممنون از لطفتون. خدا قوت. <بی> <متنی> خدا به شما هم قوت بده. موضوعی دارین شما؟ نه من برای موضوع شما همینطوری زنگ زدم که باتون گپ بزنم شما معرفی میکنین خودتون رو من کریمیان هستم خانم کریمیان الان شناختم خوبین؟ ببخشید من از روز صدا نشناختم خریش میکنم خیاده. این شما خوبین؟ من خیلی خوب ممنون شما موضوع میدونین چیه؟ بله بله خب نظرتون چیه؟ شما الان تصمیم سختی دارین که بگیریم؟ تصمیم سخت که همیشه هست تصمیمات سخت همیشه بوده توی زندگی خب الان تصمیم خاص سختی دارین که بتونیم به ما بگیم؟ نه الان چیز سختی ندارم برای الان در حال حاضر خب به نظرتون چه کار باید کرد برای این تصمیم سختی که این برادر دوستمون داره؟ من خیلی جالب بود برای من چون خودم دوره هوتل داری و رستوران داری گذاروندم و دقیقا توی فنی حرفی این دوره رو گذروندم چون من رشته دانشگاهی یه چیز دیگه بوده فکر می... وقتی خوندم دوست داشتم بهشون بگم که میتونن از دورای فنی حرفی استفاده کنن چون اون زمانی که من دورای فنی حرفی گذروندم خیلی هم مفید بود و خیلی عملی بود و استادی که من باش کار کردم خیلی استاده به روزی بود خیلی اون موقعی که شما میخواستیم برین این هتل داری رو در فنی حرفهی بخونین گزینه دیگهی هم داشتین که بین اینا به انتخاب کنی من هتل داری و رستورانو به خاطر یه چیز دیگه رفتم یعنی دلش علاقه من صرفا نبود هر که رشته خوبیه و بعد که رفتم بسیار بهش علاقه شدم من چون اون موقع فکر مهاجرت داشتم و یکی از چیزایی که توی مهاجرت برای من پوان بود داشتن این مدرک بود و من ام. به خاطر اون،, اون زمان به خاطر این مدرکش رفتم و این دوره فکر مهاجرت تصمیم سختی برای تو نبود اون موقع؟ چرا خیلی تصمیم سختی بود بسیار اذیت شدم سه،, سه یا چهار سال از زندگیمو گذاشتم براش. و بعدم نرفتم درست شد و نرفتین یا درست نشد و درست شد ولی نرفتم خب پس دو تا تصمیم سخت شما گرفتین تو این زمینه حتی اقل یکی اینکه تصمیم گرفتین برین و بعد درست شده تصمیم گرفتین نرین بله درست توی زره میشه اینا صحبت من خب اون زمان حدودا سالشو حالا دقیقه یادم نمیاد ولی فکر میکنم شیش یا هفت سال پیش بود بسیار فکر رفتن از این کشورم و مهاجرت به یه جای خیلی دور به ذهنم رسیده بود بعد با یه سری دوستایی که باشون آشنا شده بودم تو این مسیر هر روز یه سری کارهایی می کردیم که بتونیم امتیاز داشته باشیم برای رفتنم داستانش داستانش به کنار در مورد سختی این تصمیم یعنی در... این مهاجرت کردن در کنار چه دیگه ای بود که سخت میکرد این تصمیم خب، جدا،, جدا شدن از خانواده اونجا کسی رو نداشتن خب خیلی, خیلی, خب، خیلی روی... با چه مکانیستی این تصمیم رو گرفتین با چه میاری این تصمیم رو گرفتین که بریم با چه میاری تصمیم رو متوجه منظورتون نمیشم یعنی خب دو تا حداقل دو تا گزینه داشتین یکی اینکه مهاجرت بکنی یکی اینکه مهاجرت نکنین بله خب چهجوری تصمیم گرفتین که من مهاجرت بکنم من اون موقع که تصمیم گرفتم مهاجرت بکنم فکر میکردم موندن و بین موندن و رفتن به نفس همه که برم یعنی زندگی رفتن برام بهتره و شاید زندگی بهتری خواهم داشت اه. و یه مثل آرزوهایی داشتم که فکر میکردم با مهاجرت برآورده میشه بعد افتادم توی مسیری که این کارو بکنم و دقیقا زمانی که میتونستم برم نرفته خب اون موقع که میتونستیم بریم من نرفتین چجوری این تصمیم گرفتیم که نرم؟ مارد. با یکی دوست خیلی خوبم که دوست دوران دانشگاه بود باش صحبت کردم و بهش گفتم که من یه همچی تصمیم گرفتم یه شب تا صبح اومد پیشم و با هم صحبت کردیم بعدم بهم گفتش که تو نه میتونی تنهایی زندگی کنی و نه نمیتونی این همه دور باشی از خانوادت و بعدم من خیلی راحت یعنی اصلا خودم هیچ وقت باورم نمیشه ولی خیلی راحت تصمیم گرفتم که اون قضیه رو فراموش کنم و بمونم و به زندگیم بچسبم همینجا کار کنم و مهاجرت از ذهنم کلا کندم انداختم دور چون کردم خوشبخت زندگی کردن و خوشحال بودن کاری به مکان نداره یعنی تو بود مکان نمی گنجه اینو تو همون گفتگو به این نتیجه رسیدین با دوستتون بله تو همون گفتگو چه گفتگوی خوبی بوده قدر این دوستتونو بدونین امیدوارم که بدونم قطع واقع. چون خیلی یه جایی خیلی حساسی بهم کمک کرد توی زندگیم. و شاید اگر رفته بودم نمیتونستم اینقدر خوشبخت اینقدر خوشحال باشم حالا خوشبختی و... وایه خوشحال نمی شدهده میتونستیم برگردی نمیتونستیم برگردی خوب چرا ولی خیلی سخت می دیگه م... خیلی م... به نظرم برای من سخت بود برگشت چون من خیلی پلا رو باید خراب می کردم و با مامانم با پدرم بحث زیادی می که حالا باز میخوام برگردم چون خیلی رازشون کرده بودم که برم و همون موندنم خیلی به اونا کمکی. یعنی خیلی اونا به من نظرشون عوض شد خیلی یعنی به اعتماد که اعتماد بیشتری کردن خیلی کمک هم کردن بعد از اون که زندگی ما بسازم و واقعا خوشحال زندگی کنم این چیزی که خیلی برام مهمه خوشحال باشه بله الان خوشحالین خدا رو شکر بله صداتون ولی غمگین و از سردست چرا <تصفح> <تصفح> <تصفح> خیلی خوشحالم برسی چی قانع <جنگی> از از صداتم خوشحالی نمیاد حالا اینه که ما یه مثلا چند تا گزینه داریم که اینا معلوم نیست کدومش از اون یکی بهتره و این کارو سخت میکنه که مثلا من الان منم تهران. شما, به... من شما, من اصفحان... شما همه از استهان تماس میبین. همه تماس گرن ما از استهان هست. خب حتمای استهانی ها نمیدونم. حتمای شما خیلی دوست دارم. نه آره منم استهانی ها دوست دارم. اه... من بمونم تهران یعنی که اصلا مهاجرت کنم به استان. <تصفيق> اینو نمیتونم بگم ولی به نظرم تهران بمونی. تهران ب... خب پس چرا میگین نمیتونم بگم؟ به نظرم نمیتونم بهتون بگم این کار ولی به نظر من تهران بمون. بر چه اساسی اینو میگین؟ امم بر اساس چی میگم به خاطر اینکه فکر میکنم تهران کار و زندگی برای شما ام... راحت تره. حالا فرض بکنیم که اصلا مشکل کار کار و زندگی من ندارم. خب اگر مشکل کار و زندگی ندارم میرین اصفهان زندگی؟ ولی چجوری به این راحتی اینو میگین یعنی اصلا شما نمیدونید که زندگی من به عنوان یک فرد در اون در اون شهر چجوری میشه من چجوری تعامل میکنم به خب خاطر اینکه شما سالها اونجا کار کردین موقعیت کارتون رو اون تا اونجایی که من شما رو میشناسم حالا نه بیشتر از اون تا اونجایی که من شما رو میشناسم موقعیت کاریتون و موقعیت زندگیتون اونجا اوکیه آخه مگه،, مگه فقط موقعیت کار و زندگیه که آده روی تصمیم اثر میذاره نه نه نه یه چیزی که خیلی روی تصمیم میتونه با آدم کمک کنه همون خوشحال بودن. حالا برای یه نفر خوشحال بودن، برای یه نفر من شاید بخواهم زندگی توی اسمانو تجربه بکنم اه. اه، یا توی شهر دیگر رو ام... خب من الان نمیتونم به شما راهنمایی بکنم ولی من چون خودم از اون دست هایی هستم که دوست دارم تجربه کنم جاهای بزرگتر از اصفهان و نه جای کوچیکتر از اصفهان که بزرگتر نداریم فرسوان نیست جهانه بله اون که قطعا ولی نه نه از بوده تاریخی است از بوده کاری من میگم می خدمت مم. حالا ببینید سوال همونوز میکنم من تصمیم گرفتم یه شهر دیگر رو تجربه کنم زندگی درش رو اه. بین مثلا اصفهان و شیراز و یه شهر دیگرم هم بگین هست چه شهرهای دیگری داره ایران بزرگ تبریز بین اصفهان و شیراز و تبریز مردد هم چیز فاکتور خاصی هم الان, الان لحاظ شهری مدنظرم نظرم نیست ولی دوستان مثلا یک سال برم توی یه دونه از این شهرها و زندگی توی این شهرها رو فدید. تجربه بکنم. کدوم انتخاب کنم. من بهتون اسمحان رو پیشنهاد میکنم چون خودم تجربه اسمحان رو داشتم. نه،, نه نمیگم به شهری رو پیشنهاد بدیم. میگم چجوری تصمیم بگیرم. یه، تصمیم آره ملاک تصمیم گیریم باید چجوری باشه؟ ملاک تصمیم تون گیریتون... فکر کنم همون علی... علاقتون باید باشه. اگه چون براتون مهم نیست که کارتون و زندگیتون اوکی باشه داخل اون شهر فکر می‌کنم ببینیم به کدوم شهر بیشتر علاقه داری علاقه من تقریبا یکسانه به هر سه شهر به هر سه شهر خب باز بعد یه چیز دیگه هست اینکه بخواین مثلا بود مسافتش به تهران یا بود مسافتش به یه شهر دیگه اون اصلا مهم نیست چون با پرواز تقریباً چه فاصله نه خب ببین یه بچه 18 سالم که مثلا 4 تا کار و 6 تا رشته میخواد بره بخونه تقریبا همین دیگه این میتونه هتل داری بخونه میتونه خب، حتما بینید یکیشون علاقه هست یا یه بازار کارشو میسنجه خب شما همه هم... هم هم را میدنید ات... آخه شما برای من ببینید این آقای آبراهام مازلو میگه اصولا یه چیز نرمالی نیست که آدم بدون چی میخواد و من به این معتقدم اینکه آدم بدون چی میخواد و به چی در اون حد علاقه داره اصلا یه چیز خیلی نادریه یه چیزی نیستش که عموم آدمها مثل من اینو بدونن من من یه فکری افتاده تو سرم که برم یه سال توی یه شهر دیگهی به تهران زندگی بکنم فقط برای اینکه تجربه بکنم همین علاقه خاصیم هم نه به تبریز دارم، نه به شیراز دارم، نه به اسفان دارم، نه به تهران دارم اصلا برام علاق است ببین ببینیم قطعا اگر بخوایم اینجوری مسئله رو بنویسیمه حل کردنش خیلی سخت میشه چون که به هر حال یه جایی اولویتی قطعا هست خیلی سخت میشه من فکر میکنم حالا سر حالا این انتخاب شهر یا سر اون انتخاب رشته قطعا یک جایی یه یه پوان یه برتری یه چیز پیدا میشه که اون باعث بشه که من جذب اون یه گزینه بشم میدونی چی میگم اه. یعنی فکر نمیکنم انقدر همه شرایط مساوی باشه همه چیز... ها... ها... یعنی... مساوی که نیست ولی مساوی یا بزرگتر کوچکتر رو فقط به اعداد میشه نسبت داد. یکسان نیست، ولی متفاوته نسبت ریاضی نداره که بگی اون یکی از این بیشتره یا کمتره. یکسان نیست، ولی متفاوته یعنی ببینید هشت از نه کوچکتره، هفت با هفت مساویه. بله. ولی وقتی یه نفر مثلا بین ازدواج با لیلا و ازدواج با زهرا مردده قاعدتا این دو تا با هم دیگه مساوی نیستن. ولی نمیتونه بگه که زهرا عدد بزرگتری نسبت به لیلا داره در ازدواج. نه اونکه که خب یه چیز دیگه است. از توی ازدواج توی ازدواج شرایط دو طرف اگر خیلی مساوی باشه به هر حال یکشون یه یک چیزی نمیتونیم بگیم که عدده یا نمیدونم تفاوت یک چیزی هست که تفاوت داشته باشه یعنی میشه انتخاب کرد م... خب خب اگه این انتخاب در این حد سخت باشه و به ظاهر همه های بیرونی یکسان بشه که باید بکنه اون که به نظرش بده رو باید انتخاب کنه <تصفيق> ب... به نظرشی؟ <تصفيق> بدتره اون بدتره رو باید انتخاب کنه؟ بله چرا؟ نمیدونم فکر میکنم تجربه باید ثابت کرد اونی که فکر می‌کنی بده بهتر از اونی که فکر می‌کنی خوبه احتمالات زندگیتون اینو نشون داده؟ بله اینم اینم یه تئوری قابل توجههیه <تص> ام... ولی من اگه بخوام بین اصفهان و شیراز و تبریز انتخاب بکنم که اونجا یه سال تجربه بکنم یه راه اینه که تقسیم کنم مثلا سه ماه تو هر کدومش بگذارنم یا چهار چهار ماه میشه دیگه نه سه چهار تا دوازدتا چهار ماه تو هر کدوم خب بعد شاید اون تجربه که توی یک سال توی یه شهر میتونین به دست بیارینو. تو اون چهار ماه نتونین اگه تو اون چهار ماه دیدم که واقعا پتانسیل داره چهار ماه رو میکنم یک سال یا دو سال یا ده سال خب اینم پیشنهاد خوبیه هم؟ اینم پیشنهاد خوبیه اگر همونجوری که یه نفر اگه با لیلا ازدواج کنه و دیده ببینه که این درست نیست بعد چهار ماه جدا میشه و میره با زهرا ازدواج میکنه موقع مجرای تاوانهایی بده ولی خب زندگی همینه زندگی همینه همه دارن به نوعی بابت تصمیمایی که میگیرن یه هزینه میپردازن مگه غیر از اینه نه همینه ولی بعضی مواقع یعنی به تاوان دادنش نمیارزه و من فکر کنم که توی حالا مخصوصا حالا ازدواج اینقدر راحت نمیشه بگی خب من وارد این زندگی میشم بعد اگر که دیدم نیست اون چیزی که من میخواستم زهرا رو طلاق میدم بعد میرم ۶ بعد با لیلا ازدواج می‌کنم. آره به راحتی نمیشه اینو گفت و لزومی هم اینو بگی ولی خیلی هم اگر به دنبال درستترین در تصمیم بمونی یه موقع مثلا تو باز می‌کنی می‌بینی در 50 سالگی هم. برای من این خیلی اتفاق افتاده و وقتی دقیقاً شاید یک سه موندم و هیچ تصمیمی نگرفتم بعد خیلی گذشته و دیدم تمام موقعیت‌ها رو دیگه نداره. چطور انفعال می‌شی دیگه؟ بله دقیقاً. ترس از تصمیمگیری به, به به پارالیسیس به قول انگلیسی ها میرسه به به یعنی به فلج و این از انفعال هم بیشتر فلج دیگه یعنی هیچ کاری انجام نمیدی. دقیقا درشت آدم آدمو فلج می‌کنه و ایشانه. و حالا حرف من اینه که این اصلا انتخاب سر دوراهی نیست یعنی خوندن مثلا دوتا رشته تحص... تصمیم گرفتن بین چند تا رشته تحصیلی یا رشته کاری شغلی این انتخاب سر دوراهی نیست این مسیر زندگی شما میتونی ازش رد بشی عبور بکنی ده ده. این تصمیم... تصمیم برای اینه که چقدر در اون منزلگاه منزل بکنی این که من از این دوراهی برم میره مثلا من عباس از اون برم میره مشهد این مدلی لزوم نیست درسته. درسته درسته ولی بعضی تصمیمات مثلا تصمیم این جوونمون به نظرم میاد که خیلی هم سخت نیست یعنی شاید راحت بشه یکیشو یک تجربه کرد یه مدت داخلش موند بعد اگه دید نیست چون هم سنش بش این اجازه رو میده و هم موقعیتش احتمالا حالا مقیعتش رو نمیدونم ولی شاید موقعیتشم هم بهش این اجازه رو بده ولی راجع ازدواج یا راجع به یه سری تصمیم حالا ازدواج به نظرم بیجزه تصمیمات خیلی سخته یعنی جزه مهمترین تصمیمات زندگیه اونو باید یه ذریع بیشتر تعمل کنه آدم روش و مسئله بیشتر و کمتر نیست مسئله نوع نگاهه من نمیگم این در ظرف کسری از ثانیه تصمیم بگیره که بره هتل داری بخونه یا بره برنامه نویسی یاد بگیره اینم میتونه یه هفته دو هفته ده هفته تعمل بکنه روی این داره. ولی مسئله اینه که شما به عنوان دو راهی به این نگاه میکنی و اینکه اگر یکی رو انتخاب بکنی دیگه هرگز روی دومی رو نمیبینی یا اینکه نه این به عنوان منزلگاه نگاه میکنی که میتونید یه شب توش منزل کنی یا صد هزار شب خب فکر نمی که به موضوع بستگی داره حالا نگاه و من کاملا با شما موافقم ولی موضوع هم خیلی مهمه اینجا به موضوع بستگی داره من نمیگم همه یه تصمیم اینجوریه ولی من میگم بعضی از تصمیم که اسمشو میذاریم تصمیم اینجوریه بعضی اینجوری نیست مثلا اگر شما توی یه جمعی نشستی و یه نفری که براد ارزشمند دوستش داری یه چیزی میگه که عصبانیت شما رو برمانگیزه شما یه مدت زمان خیلی کمی باید تصمیم میگیری که جوابشو بدی یه حرف زننده بهش بزنی که خشم تو خالی بکنی یا اینکه خیال بشی و آرامش تو حفظ بکنی در اون کریستانی شما تصمیم میگیری و اگر هر کدوم از اون کار هم بکنی اصلا مسیر زندگی شما امکان داره عوض بشه و آبی بریزه که دیگه هرگز نشه جمعش کرد درسته بله اون، اونا هم جزو تصمیم سخته به نظرتون صد در صد. چون هم زمانی کمی دارید همین که قابل بازگشت نیست من دیگه بهش نگاه نکرده بودم ولی واقعا بعضی مواقع همینطوره یعنی یه جایی ممکنه آدم یه حرفی بزنه که زندگیشو عوض کنه و مثلا یتفاقای خیلی بدی براش پیش یا ایتفاقای خیلی خوبی برش بله برش ولی وقتی که برش میخوای انتخاب بکنی که بری هتل داری رو تجربه بکنی این میگه اصلا تصمیم نیست چون فقط باید از خودت بپرسی که چیزی از دست نمیدی فقط باید از خودت بپرسی که این ارزش امتحان کردن داره یا نه دلست دلست. اگه حس میکنی ارزش امتحان کردن داره امتحان میکنی و بعدم اگر امتحان کردی و دیدی در این منزلگاه نمیخوای بیشتر از یه حدی بمونی ترکش میکنی و از چیزایی که حتما یه چیزی به دست میاری بعد از اون امتحان کردنه امکان نداره چیزی یاد نگیری. درست. اونو اون یادگیریشو بعدم میری منزلگاه بعد. ولی درست. اگر تصمیم تصمیمی درستی توی یه مثلا توی اتوبان با سرعت 120 نگیری امکان داره تصادف کنی و بمیری. بله. پس اون تصمیم سختیه و بازگشتنی نیست و در یه زمان کوتاه اتفاق می‌افته. دقیقا همینه. و واقعا این خیلی نکته جالبیه که من وقتی امروز صبح این مطلب شما رو خوندم فکر وقتی خوندم تصمیمات سخت به هر چیزی فکر کردم جز این, این چیزایی که الان شنیدم یعنی جواب دادم به یه مراجعه که یه دوست یا حتی رانندگی رانندگی هم تصمیماتش بعضی مواقع بسیار سخته چون اگه اشتباه تصمیم بگیری ممکنه تو از دست بدی و هیچ جای جبران نداره و یعنی خیلی جالبه که امروز صبح من هیچ فکر نکردم که تصمیمات سخت این چیزای جزئیه تصمیمات سخت یه اتفاقای خیلی بزرگه تو زندگی آدم مثلا مثل ازدواج حالا انتخاب رشدم میتونه تصمیم سختی باشه ولی باز هم به سختی مثلا ازدواج کردن نیست ولی سختیه ازدواج, ازدواج حتی وقتی میگن تصمیم سختیه به خاطر اینه که ناشناخته است و ما هیچ ابزاری برای شناختن اون چیزی که ناشناخته است و جمع وری اطلاعات براش نداریم ده ده. هر چه قدم که زمان بیشتری صرف بکنیم و تعمل بکنیم و تلاش بکنیم و از دیگران بپرسیم فقط آب در هاون کوبیدیم تجربه سنکر. هیچ کمکی نمیکنه به خاطر اینکه تا زمانی که شما ازدواج نکنید و وارد اون رابطه نشید این اصلا شکل نمیگیره و نتیجهش مشخص نمیشه و اون،, اون چیزی که باید ببینی رو شما نمینه اون اطلاعاتی که بعد تولید بشه و مشخص کنه برای یه نفر که این خوب بوده یا بد بوده این اصلا معلوم نمیشه سختیش در اینه سختیش در این نیستش در این نیستش که مثلا از سختیش از جنس بالا رفتن از مثلا قله اورست نیست. درسته. سختیش از جنس نمیدونم یاد گرفتن ویولون زدن نیست. سختیش از یه چیز ناشناخته است. یه چیز بعد از تصمیم گیریه. نه سختیش سختی قبل از تصمیم گیری نیست. این دو تا رو ما با هم قاطی می کنیم چی میگم؟ بنده کاملا متوجه. مثلا دو تا دو تا پدیده متفاوته و حالا یه نفر میخواد سختی بعد از تصمیم گیری رو با انتقال به قبل از تصمیم گیری به صلاح استفاده کنه از این انتقال این سختی برای اینکه ریسک اون تصمیم گیری رو بیاره پایین یا فکر کنه بهترین تصمیم رو گرفته بسید که اصلا این قیره ممکنه حالا چه بکنیم که اینجا دیدمون عوض بشه یعنی اونجا منزلگاه بدونیم و حرکت کنیم فقطم تمیز بده یعنی ف... فقط تمیز بین این دوتا مفهومه یعنی اینکه این, این تس تص... این که من الان بهش میگم تصمیم سخت تصمیم سخت نیست تنها سوالی که من اینجا میتونم از شما بپرسم اینه که این ارزش امتحان کردن برای من داره این okay. مطابق های من هست برای امتحان کردن من اینو میرم امتحان میکنم و وقتی رفتم امتحانش بکنم با تمام وجود با تمام تلاشی که میتونم مسئولیت این تصمیممو میپذیرم و باهاش تعامل میکنم و بعدم اگر این چیزی که من میخواستم نبود این منزلگاه ترک میکنم و با برداشتی که ازش دارم و یادگیری که ازش کردم میرم منزلگاه بعدی و چیز دیگهی که برام ارزش داره امتحان میکنم خیلی خیلی جالبه بله خیلی خیلی تعریف جالبی بود بلیه هم مورد رانندگی تو رانندگی شما نمیتونی اینجوری برخورد کنیم با قضیه ارزش داره من بزنم رو ترمز ارزش داره مثلا لاین نوست کنم دقیقا اونجور باید سریع تصمیمت رو بگیری و بهترین تصمیم رو بگیری آره چون که دیگه قضیه قضیه جونه و اگر اشتباه تصمیم بگیری جونه تو از دست میدی و دیگه غیر قابل برگشته ام. ولی راجب این دوستمون به نظر من میاد که چون من حالا این دوره رو باز میگم گذروندم پیش پیش نهاد میکنم بره تجربه کنه و واقعا رو داره انقدر چیزای قشنگ حالا شما چی تو این دوره یاد گرفتین؟ انسان هوتل داری به چی میگن هوتل داری؟ داری به چی میگن؟ خیلی آداب داره هتل داری حالا از پذیرش، چیدمان. هر چیزی تو هتل اون درضمون مطلبی هم که درجب به یکی از هتل های بسیار زیبا بود. خیلی متاسف شدم که من تو اون تایم ایران نبودم و خیلی واقعا دوست داشتم که می بودم توی برنامهتون شرکت می حالا اینه خواهش می‌کنم، ایرانایی که میرن دوره های هتلداری رو میگزنن فکر کنم مثل شما همه استفاده نمیکنن ازش نمیرن توی هتل کار بکنن نه اینه که توی هتل ما نتیجه‌اشو نمی‌بینیم. دقیقا اونها که تو هتلن اکثرشون یه چیزای دیگه خوندن احتمالاً. من حالا چیزی که به من کمک کرد اینکه من به عنوان یه مسافر وقتی میرم وارد هتل میشم دقیقا میدونم که چی باید از اون هتل بخوام و کجا اون داره اشتباه میکنه و حالا شاید خیلی از آدماییم که هتل داری نخوندن اینو بدونن ولی من چون حالا دورهشو گذروندم خیلی یه, یه طوری باشون صحبت میکنم که بدون من میدونم و حقمو میگیرم ازشون حالا خارج از هتل این چیزایی که خوندین چه کار بردی برای شما داشته اون چیزی که تو مطلب شما خوندم یا نه توی هتل داری خوندم. خوندین خارج از هتل آیا تو زندگی که الان دارین خیلی تاثیر داره خیلی حتی تو زندگی خصوصی آدم چودو دمان میز توی چیدمان دکوراسیون که چی باید کجا باشه که درست و اصولی باشه خیلی به آدم کمک میکنه یه از... کسی که میره هتل این اصلا اسم رشته هتل داری باید. کسی که میره این ه هتل داری رو میخونه چه مشاغلی براش ممکن میشه چه ببین مدیریت رستوران و هتل داری یه رشته ایه که خب تمام این زیر شاخه‌هاش میتونه در بر بگیره مثلا فست بود و داره همه رشته هایی که به این مربوط میشه رو داره چیدمان میز هر چیزی دیزاینه اتاق همه اونا رو بهت یاد میده دیگه همه اونا را بهت یاد میده و تو زندگی خودت هم میتونی اونا رو ازشون استفاده بکنی یعنی چیزی نیست که حتما سرسن باید بری و اونجا کار کنی تا اون ب... بهترین هتل اسمان چه هتلیه؟ اسمن که هتل شا عباسه؟ و هتل کوسر هتل کوسر بله ولی اون چیزی که من میدونم نه توی اصفهان خیلی از جاهای ایران اون چیزی که هتل داری واقعیه رایت نمیشه و جای خیلی خیلی کار داره چه چیزی هست هتل داری واقعی که رایت حتی اون سندالی که شما تو اتاق میشینین روش اون سندالی هم تعریف داره مدل مرتب کردن رخت خواب، چیدمانی که باید روی میز باشه برای مهمان، یه نفر مهمان، برای دو نفر مهمان، اینکه مثلا اتاق آشپزخونه داره چه چیدمانی باید داشته باشه، آشپزخونه نداره چه چیز چیدمانی با... همه اینا یه علم واقعا و بسیارم زیباست یعنی چیزی که من خودم وقتی رفتم دوره رو گذروندم خیلی دوست داشتم، حتی توی ها وقتی میرم قضا میخورم اون, چی... اون میز و اون سندلی خیلی جاها ایراد داره یعنی اون میز و سندلی برای این رستوران مناسب نیست سندلی که توی فست بوده با سندلی که تو رستوران سنتیه باید متفاوت باشه همه اینا رو بهت یاد میدن و این وقتی میرید مثلا رستوران غذا بخوری این به نظرت میاد. یعنی به نظر من که میاد. چه چیزایی روی میز هست، نمک دونش کجاست، اون گارسون چطوری اون آب میوه رو یا نونشابه رو برای تو سیف میکنید. من فکر کنم شما که الان این دوره رو گذراندین. انتظارتون رفته بالا و زندگیتون خیلی سخت شده در هتل رفتن رستوران رفتن چه رفتن شاید ولی خب ما وقتی مسافرت میریم اون هتلی که برامون انتخاب کردن مجبوریم بهش تم بدیم دیگه نمیتونیم عوضش بکنیم آره ولی خب داره. چون من فکر کنم خیلی از رستوران و هتل ها این چیزا راयत نمیکنه شما اصلا متاسفانه خیلی داره. نمیدونن چیه ولی خب حساسیت ادمو میبره بالا و خیلی جا وقتی میگی قبول میکنن خب چه قبول. فایده داره قبول میکنن خب ممکنه تأثیر داشته باشه بسیار خب رفتیم تو هتل داری اصلا ولی من خیلی دوست دارم یه روز توی هتل کار بکنم خیلی تجربه خوبیه آره شاید اصلا این چم ماهی رو که تو این سه تا شهر اصلا برم توی هتل کار کنم نظرتون چیه؟ تجربه خوبیه من ماه چار ماه توی سهان در من جاییه که میتونی خیلی چیزا یاد بگیری آره و خیلی میتونه کمکت بکنه یکی توی یکی از این پادکستاتون یه سوالی پرسیدین از یکی از این دوستان هم. راجب سه تا شوق و من هی دوست داشتم اون یکی رو که هیچ کس انتخاب نمیکرد انتخاب کنن و هیچ کس من انتخاب نکرد و گفتم که چرا این نظافت منزل رو منزل منزل. شما واقعا اون دوستش انتخاب کنید من اگر بودم حتما نضافت منزل رو میدونیم اصلا فلسفی این سه تا سوال چی بود و چه چی دیرونه شما اونزو تا دیگه خیلی کاراش کاری معمول و خیلی ابتدایی بود و ممکن بود تجربت خیلی کم به تجربه تو اضافه کنه ولی توی این منزل تو میتونی آدم های مختلف رو ببینی زندگی های مختلف رو ببینی بعد حالا من همینطوری که گوش میدادم بر خودم رویاه هم میکردم بعد گفتم مثلا یه روز میری توی خونه ای که یه خانم پیره با یه عالم تجربه میتونی باش دوست بشی بعد برای تعریف کنه من خیلی بسپر کردم و تعجب کردم که دوستان هیچ رو انتخاب نکردن. آره شاید به نظر میومد کار سختیه و به حال نشستن سر صندلی و اسکن کردن آیتم‌های سوپرمارکت به ظاهر کار آسونتری میاد. ولی بعد از یه مدتی آدم فسیل میشه اونجا. بستگی به آدم داره یعنی برای خود من جالبه که چه انتخابایی میکنند کنم شما اگر بودین کدوم انتخاب میکردین من اضافه منزل انتخاب میکردم بله خیلی خوشحال میشم یه چی بود ده. کشیر سوپرمارکت آن کار در کل فجی بود من که انتخاب دوم سوم شما چی بود قطعاً کلپزی که انتخاب نمی چون <تصفيق> <تصفيق> دوست ندارم ولی ترجیح می دادم انتخاب من, من انتخاب سومم باشه من انتخاب دوبارم کلپزی بود انتخاب سومم کشیر سوپرمانکت اون بستگی به زایقه آدم داره ولی من چون از بوش اصلا متنفر بودم شاید اونا انتخاب سومم می هر که شاید تو کلپزی تجربه بیشتر از اون یکی باشه ولی اون اصلا شغل خوبی نیست به نظرم بد و خوب نداره نمیگم کدوم خوبه کدوم بده ولی این, این تفاوت جالبه موزوشی بود موزوش اون موقع موضوعش همون شغل بود دیگه بله بله استخدام بود ولی اون ایدهتون حالا من بهتون حق میدم که میخواستین به قول چی داشته باش یعنی تلفن بزنن بهتون ولی اینکه بعد می اومدیم به همه اونها توضیح میدادیم بعد خیلی‌هاشون خیلی از اونها فکر میکردن خب الان پس چی شد ما استخدام میشیم یا نه بعد اون یه حس یأس و این مجبور بودم چون تو اوجی تو بعد من دلم براشون میسوخ واقعا الان خب حالا چیکار کنه بعد بره یه جای دیگه دوباره بگره دنبال یه روزنامه و یه کار دیگه و به نظر بدترین راه برای انتخاب شغل روزنامه یعنی به نظر شما من کار بعدی کردم و آگاهی کردم نه من کاملا بهتون حق میدم در فضای خیلی جالبی بود ولی انتخاب شغل از طریق روزنامه انتخاب خوبی نیست چجوری آدم با شغل انتخاب کنه یعنی من اگر الان میخوام توی یه هتل توی استان کار کنم چجوری باید این کارامو پیدا کنم به نظرم این دم هتل بپرسیم بهتر از که آگاهی بدین روزنامه. دمه هتل که آخه با مدیر هتل صحبت کنم کرده‌ام. اما مظلومی که به این هتل هر کدوم از هتلا سر بزنیم بپرسیم بهتر از اینه که آگهی بزنیم تو روزنامه که علی سخاوتی دنبال ها... کار توی هتل <تصحنت> <تصحنت> خیلی وقت دیگه. نه شاید من که آگهی نمیزنم دنبال کار ولی شاید برم تو روزنامه و هتلایی که آگهی کردن بهشون زنگ بزنم. آها خب آخه هتلام فکر نمی کنم این کارو بکنه. هتل آگهی من ندیدم. شما آشنا ندارین تو هتل اسفان کار برم پیدا کنین؟ چرا آشنا ندارم؟ اگر... هتل شعباس، عباس, عباس... شعباسی. عباس, عباس, عباس یا شعباسی؟ شاه عباس. شاه عباس ببین من اونجا اونجا خوام کار کنم دیگه تو رو خدای واشتم پیدا کنین. سعی کنم یه رایزنیایی بکنم. بالاخره <تصفح> اون اد... اونجایی که درس خوندین از طریق اساتیدتون و راستش می‌دونی که از اونجا داریم، قاعدتاً اگر می‌شدی. جدی بود حتماً به من بگی تصممم جدیه؟ شاید بتونم کاری بکنم. تصممم جدیه؟ چهار ماه اصفهان، چهار ماه شیراز. حتماً دیگه تابسی. آدم شا... بهترین هتل کار کنه، بهتر دیگه؟ ام. یا نظر شما چیه؟ بهترین هتل کار کنه؟ ببینین نه. نه، نه، نه، نه. من من فکر نمی کنم این حالا خوب باشه شما بودین چه هوتلی رو انتخاب میکردین؟ من اگر بودم چه هوتلی من یه هوتلی رو میشنستم از یه هتل کاملا خصوصی به نام سرای اتار <تصفح> و اگر که اونو اگر که میخواستم کار کنم ترجمیل دادم توی, توی سرای عطار کار چه چه جور جاییه این خونه های قدیمی و از, اون از اون خونه های قدیمی باستازی شده است بسیار زیباست و م... کارش هم اصولیه هم. چند اتاق است فکر میکنم 24 تا اتاق داشته باش 24 اتاق؟ اونجا اشنا دارین شما؟ بله اونجا اشنا دارین. در حد مدیریت و اینا؟ یعنی میتونین حد... کار پیدا کنیم برای من؟ بله در حد با... مدیریت و یعنی خود اون صاحب اونجا از دوسته سمیمی منه واقعا؟ خانم اون آقا دوست سمیمی خب دیگه من کارم هم پیدا ببین پادکست من اولین اولین بازگشت سرمایه پادکست گفت و علی سخاوتی خیلی عالیه چی میخوام دیگه من؟, من نظر شما از یه پادکست خیلی خیلی خیلی خوبه دستاورده بسیار جالبیه این حالا فکر میکنین این پادکست برای شنونده ها چه خاصیتی داره موضوعش خیلی جالب بود برای همین من خودم دوست داشتم از صبح رنگ بزنم <تصفيق> و این مو... این موضوعتون به نظرم از همه موضوعا بهتر بود البته میدونم دوست ندارین اینجوری حرف بزنم ولی نظر خودمه من چرا دوست ندارم اینجوری حرف بزنم؟ مم... خب برای اینکه اون موضوعاتون هم خوب بودن مثلا همون پرتقال تامسون خیلی موضوع خوبی بود یا اون یکی قبل ببینید من فکر کنم موضوع هم مثل تصمیم گیری میمونه یعنی این موضوع هم به هم صرف، به صرفن خوب نیست شاید اگر این موضوع به نظر شما بهتره به خاطر اینی که حالا خود شما و بخشی من تعامل بهتری و تأثیر بهتری یا خلق بهتری به کمک این موضوع یا در این موضوع داشتیم مثل یه شغل میمونه در مو... یه موضوع دیگه مثل اون موضوع استخدام این... این خلق و این تعامله اونجوری که باید و شاید یا به اندازه این به خوبی این نبوده ولی خیلی سخته که بگیم صرفاً یک موضوع از یه موضوع دیگه‌ای بهتره خب آره گفتم نظر منه ولی اون موضوعم خیلی خوب بودن من صرفا برای اینکه یه چیزی خلاف نظر شما بکنم آهان به اون خب که خب بهتون حق میدم چون باید شما خلاف نظر من خیلی خوشحال شدم که هم با شما صحبت کردم هم یک پتانسیل شغلی در هتل اتار اسفحان پیدا کرد برای اتار سرای اتار اسفهان پیدا کردم و فکر میکني از کی من بتونم کارم اونجا شروع کنم شما هر موقع که تصمیمتون قطعی شد بفرمایی من صحبت میکنم باشه حتما حتما خیلی ممنون شما چیز دیگه میخواین اضافه کنیم به این پادکست؟ نه بسیار لذت بردم از مصاحبت به شما منم همینطور لط کردیم زنگ زدیم خایش میکنم اینشالله که مثل همیشه موفق و پیروز و شاد باشیم شما همینطور خیلی ممنون خیلی ممنون خدا نگهدار خدا